دوستان با استاد منوشهر جمالی صحبت میکنیم گفتگوی این هفته ما درباره بخش دیگری از مفهوم دیو در شاهنامه است آقای جمالی ما در داستان تحمورس برمیخوریم به این مسئله که تحمورس دیو بنده یعنی اون،, اون مسئله بستن دیو یا دیو بندی هست بعد یه مسئله مهم این هستش که در این داستان خیلی درباره یاد گرفتن خط یاد گرفتن نوشتن فن نگارش که دیو ها این رو به تحموله ساموختند اگر میشه یک مقدار این قسمت از شاهنامه رو که در رابطه با این مسئله صحبت میکنه یه مقدار باز کنید گسترش بدید تا ما با مفهوم دیو در این قسمت آشنا بشیم و اصولا آشنا بشیم که چرا این ها که زشت ساخته شدن چرا خط یاد میدن؟ چرا نگارش یاد میدن اگر میشه یه مقدار این مسئله رو بشکافید چرا کارهای خوب میکنه بله بله چرا کارهای نیک میکنن این تصویر دیو در این داستان ناگاهان چهره مثبت خودشون رو نشون میده یعنی ناگاهان میبینیم که دیو که در این داستان میاد سرچشمه دانش و بینش رو خط میشه من یه بخش این رو میخونم که تحمورس یکایک بیاراست با دیب جنگ نبود جنگشان را فراقان درنگ از ایشان دو بهره به افسون ببست دگرشون به گرز گران کرد پست یعنی اینا گروه بود و دو گروهشون رو به ابسون به بند کشید و دگرشون و بخش سیامش رو به گرز گران کرد پس. کشیدندشون خسته بود، بسته خار خسته یعنی زخمگین به جان خواستند اون زمان زینهار که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزی از ما کتاید ببر از ما یک هنر نو بیاموزید که برای تو بارآور است که نامور دادشون زینهار بدان تا نهانی کنند شکار. چو آزاد شد چو آزادشون شد سر از بند او بجستند ناچار پیوند او نبشتند به خسرو بیاموختند دلش را به دانش بربروختن ببینید نه تنها نوشتن بلکه دلش را به دانش برپوخت. نوشتن یکی نه که نزدیک سی چه رومی چه تازی یا چه پارسی چه سقدی، چه چینی یا چه پهلوی نگاریدن اون کجا آن کجا بشنوی ببینید اینجا معلوم می شود. البته نوشتن که کتاب باشد مفهوم کلی دانش و بینش دارد که اینها دانش و بینش به تحمورس بیامختند. پس پس بنابراین دیوها سرچشمه دانش و بینش بودند چون که این داست تحمورس در شاهنامه به حساب پدر جمشید است بلی. که در جمشید این خرد او خواستی که جهان را می آرایت پیداش میکند پس این دانش و بینش معلوم می شود به این دیوها برمیگشت است. خب حالا میپرسیم که پس دیوها سرچشمه خط و دانش و بینش بودن و این با اون مفهومی را که به ما از دیو به عنوان انسر مرفی و زشت و تباهکار داده می شود این ناجوره ناسازگاره خب روی این یه کمی فکر می این از که برمیگردیم برای خاطر اینکه داستان برای ما روشن بشه که این دست مفهوم دیو در فرهنگ ایران تغییر شکل به خودش داده در اول چیزی دیگه بوده بعدش چیز دیگه, چیز, دیگه چیز, دیگه. چیز دیگه شده پس بنابراین دین یه دیو اینه که گفته میشه یک خدایان بیگانه و خارجی بوده نبوده این دیب اساسا خدایان ایران بودند که اینها بعدش از ادیان تازه وارد زشت و تباهکار و تیره ساخته شدند این در تحولات دینی و اعتقادی یک چیز عادی بله. که خدایان پیشین مرده قبول خ... خدایان تازه دی... دینای تازه خدایان تازه دارن موافق نیستن اینی که اون خدایان رو اغلب ابلیس میکنند و پستیب میکنند و اهریمن میکنند و اینا که خیلی مهمه که ما این مسئله دیو رو متوجه بشیم این خدایان گذشته ایران بودند و اینها بودند که در واقع سرچشمه دانش و بینش بودن و درست شناختن این خدایان برای ما اهمیت دارد چون که ما باید سرچشمه بینش و شناخت رو در فرهنگ ایران بشناسیم پیدا کنیم درست. اول من اشاره میکنم به اینی که خود این تحمورس در آقات ببینیم تحمورس کی بوده در اینجا البته تحمورس در شاهنامه پدر جمشیده بله. بعد از تحمورس درست جمشید میان درسته. و این پسر اون شمرده میشه درسته. ولی این قضیه این است که این داستان بعدی است چون که این تحمورس پدر جمشید نبوده بلکه مادر جمشید بوده این است که بعد داده شده. آره بعدا بر ضد زن خدایی و مادر خدایی و بانو خدایی این خدایان مادینه را همه تبدیل میکردن به نرینه در این اینکه اونجا وینگهان میاد او هم همینه اونجا می‌بینیم که جمشید رو برای این خاطر و اون جهان پیدا می‌کنه چون که اولین کاری که می‌کنه اینه که هوم را که البته نای بوده نای بوده می فشاره و این شیرابه که می‌گیره در پاداش این شیرابه جمشید رو پیدا می‌کنه این البته داستان این داستان زن خدایی بوده که تبدیل به،, به نرینه، به مرد خدایی شده. چرا؟ این نای به مجرای زایش زن و مجرای منی مرد گفته می شده. اینا هر دوتا نهی بودن. اون وقت اینه که این زایش زن برای خاطر اینی که به جای این بگویند که جمشید از تامورس از ویمگان زاده شده در دوره مرد خدایی میگفتن اینها نی را فشردن و این شیرابه نی چون که علامت هن شیرا نی شیرابه نی گرفتن اندیشه بوده که جای زا ایده زایش را میگرفته این اینها در اثر این که این شیرابر رو گرفتن برای پاداش این جمشید رو پیدا کردن یعنی عملا ضایش از زن را حذف کردن در اینجا در داستان جم... تهمورس هم راحتی میشه این رو پیدا کرد برای خاطر اینکه که اولا این در عوستا و اونجا میبینیم این ت... تهمورس زیناوند نامیده میشه درسته هره. یاد هم؟ بله. هم بله. ز... زیناوند یعنی دارای زین و معمولاً این ترجمه میشه یعنی دارای اصلحه غلط هم نیست اما تحریفه برای خاطر اینکه زین تو کتاب های لغت حتی همین کتاب لغت ده خدا که بگردید میبینید معناش یعنی نه زیناوند یعنی دارای نی البته نیزه و سنان و فلان و اینا رو از نی درست میکردن اینی که دارای اصلا هست نیست اما درستش معناش اینی که یعنی دارنده نی یعنی دارنده زهدان منش پس بنابراین یک نوع تحریفیست اما در خود نام تحمورست بهتر میشه این مفهوم رو پیدا کرد این معمولاً این تهموره تخم اروپا واجه اصلیشه تخم رو معمولا ترجمه میکنن کنن دلیل و تهمتن و فلان و اینها ولی تخم همون تخم و تخم و اینها یک واجه علت اینی که به یک دلیل و یک پهلوان تخم میگفتند، مثل رستم تخم است تخم رو به این علت میگفتند چون که تخم معناش مبده و منشه و یک اصل قائمه بزاد بود مرد مستقل بود، مرد آزاد بود برای این خاطر میگفتن برای خاطر اینی که از خود رو ایده بود بله از خود رویده بود آره از خود از خود بودن بله از خود آفریده شدن اینه که تختنم تنم یعنی تخم در زهتان یعنی چیزی که خودش خودش رو می آفرینه چون که وقتی تخم, تخم و زهتان که با هم باشه اصلا آفریننده است بنابراین رستم برای این تخطن گفته نمیشه. تخم گفته میشه یعنی انسان آزاد و مستقل این معانی دیگری که با اون میذان اینا همش معانی که طبق تفکرات امروزه از این استراحت گرفته میشه اون معنای جفت بودن تخم و زهدان اون فراموش شده حالا این پس تخم همون تخمه اروپا که همون اروپای امروز ما یک واژه همین واژه است. این اوره پا هست اوره چیه؟ اوره در سانسکریت به پستان و سینه گفته میشه مثلا مار بر روی سینه اشک میخواسته از همین اسم مار رو درست میکنن در سانسکرین ارومی هم از همین اومده؟ ارومی هم همین ارومی این نه ارومی از چیز دیگه اومده درست مس... ارومی ارومی اون رو بست جداگانه می آره یه بار دیگه هم برمیده بله این اروپا پا یعنی مکیدن رو مکیدن و چشیدن بایجه پا پا آره، معنای پا معناش مکیدن و چشیدن یعنی چیزی رو که انسان این از ش... ش... این معنای اروپا یعنی مکیدن شیر از پستان چون که این پ... زن خدا، این همانی زن خدای عشق که خورم باشه این همانی با پستان داده میشه چونکه این پستانیست که است که به همه بشر شیر میده بنابراین این را اروپا میگفتن و یعنی پستان شیر دهنده به همه بشر یعنی مادر همه بشر شیرم چونکه معنای عشق داشته یعنی همه از شیر او تغذیه میشن از شیر او پرورده میشن مادر یعنی زن خدای عشق مادر جمشیده درست؟ و درست چون که شیر که جیبام شیر جیبامه، جیبام جی بام یا جیبام بام باز این زن خداست جیب یعنی شیر وقتی درست این واجه در حوزوارش معنیش روچه یعنی روشنی یعنی کسی که این شیر رو به روشه چیه؟ روشن میشه آره. یعنی, یعنی خرد پیدا میکنه پس بنابراین میبینیم که جمشید خردش از کجا میاد؟ درسته؟ حالا این قضیه اینه که این چی تحموره تخ... و می‌بینیم که در اروپا این تصاویری که یونان و اینها راجب اروپا نشون میده یه زن رو بر روی گاب نشون میده خودش رد پای همین اندیشه اروپا هست متوجه استید همین تحمورسه ما حالا این زن خدای عشق بوده که به همه شیر میده البته این خود این زن خدا یعنی خرهم چون که آفریننده بوده اساسا دیو بوده یعنی دو تایی بوده که با سومی یکی می شوده. درست پیوند درست. درست. اینه که درست. چون که آخر نیم دو درست. که با یک گره هم پیون داده میشه زیناوان دارای نه دیگه پس بنابراین باز همین مفهوم ما این مفهوم خرم رو در جاهای دیگه همین ایده دیو بودنش رو یعنی ایده جوف بودنش رو پیدا میکنیم در اینجا مفهوم چیز مفهوم این جوف بودنش در داستان وزیرش میاد دستورش میگوید که مرور یکی پاک دستور بود که رایش ز کردار بد دور بود گزیده به هر جای به هر جای شیده است نام نزد جز به نیکی به هر جای گام همه روزه همه روز بسته زخوردن دولب به پیش جهاندار بر پای شب همون بردل هر کسی بود دوست نماز شب و روز آینه اوست از همین جا دو چیز را اینجا این, این شیداست است من توی واجه شیداست نمیخوام وارد بحث به که به درازا بکشه ولیکن این ویژه این دستور که به حساب در عمل همون ایده جفتی خو همین خود خرم هست میگوید دو, بی... دو دو دو داره یکی نماز شب یکی روزه درسته بله حلو این نم... نماز شب اصطلاح برای غروب به غروب آخر روز و اول شب میگویند نماز شب این است تو اشعار حافظ و جای دیگه اینو میبینیم نماز شب همیشه عین یعنی غروب مت این اساسا این خدا اسم دیگرش همین غروب رو آگاه غروب رو اوزارین میگن که همین اوز که باشه. متوجه هستید بالا اینم بحث درازید ولی بحث دیگر اینه که روز آین اوز. این روز در فرهنگ ایران مثل اسلام و اینا نبوده اصلا همینجا که الان گفتیم گفتیم اسمش چیه؟ روچه درسته؟ روشنی، بله اره، روچ این روچ همون کلمه روزه این هم روزی هم باجه روزه از این, میاد. از این میاد حالا چرا بهش روزه میگن؟ روزی برای خاطر اینکه این تقضیه میده همه با اون شیر آخر شیر که اسم دیگرش گد و اینا باشه میبینیم همین کلمه اصلا هم در کردی هم در عربی شده قضا گدی گدا قضا اصلا کلمه قضا از همین شیر درست شده دکتر رو متوجه میشه بله بله حالا. این قضیه روزه اینه که در فرهنگی ایران همین الان هم زردوشتی ها با این پیشینه تاریخی که بوده که البته از زردوش نبوده از جاهای دیگه این روزه به این معنا بوده یعنی این معنا رو در ایران داشته که کسی در این غذای گوشت نمیخورده نه اینکه جان مقدس بوده بله چهار روز در ماه الان هم زردوشی ها روزه میگیرن لب به گوش نمیزنن لب به گوش نمیزنن و حیوان رو هم نمیکشن چرا؟ برای خاطر اینکه این چهار روز چهار تا خدایان هستن که قداست جان به این چهار تا خدا میگرده. یکی از اینا کیه؟ خورمه خود متوجه نکته یعنی قداست جان اینه که میگه نماز شب و روزه به این برمیگرده خیلی خوب پس ما میتونیم به این وسیله یک گواهی پیدا کنیم که مقصود از این نماز شب و روزه همین خداست درسته درسته بله. حالا مثله اینه که این گفته شد که گفته شد که دانش و بینش از دیوهایی پیدا شد که این تهمورس اینها را میبندد و اسیر میکند و فرا. این با اولا باشه دیوان این یک است که ما خیال میکنیم یعنی دیوها را گرفتن و بستن این نیست اصلا این کلمه معناش این نیست مثلا ما میبینیم روز مهر در تقویم در تقویم ایران روز مهر یعنی روز پیوند و عشق درست هست اسمش دیواند. چرا دیو برای خاطر این کلمه بند یعنی جفت یعنی با دیو جفته نه یعنی دیوی که در گوهرش شفت. که جفتی داره یعنی <laughs> آفریننده است مهر آفریننده است اصلا این کلمه دیوان مثل همون زیناواندی که کردن داره اصله. این اینجا هم رو چرخوندنش که تحریف بکنن به این وسیله اون مفهوم اولیه که یعنی این خدا آفریننده است به علت این جفته او <سطور> هرر جفت داره دو بن جفته <متصال> این البته مفهوم است که از بند معنای جفت داره مثلا امروز هم میگن یه بند گاب وقتی که در شوخ و می ها میخوان بکنن یه یوق گاب رو که دو تا گاب رو به هم پیوند میدن میگن بند <متصال> <سطور> این معنی جفت اینا. حالا این معنی مع که به این ترتیب ما میتونیم تشخیص بدیم که این داستان این خود همین زن خدای عشق و شیر دهنده اصل بینش و دانشه علتش هم خیلی روشنه برای خاطر این خدا خدای مزه هم بوده و چیزی که میمزه مزیدن شیرابه جهان رو میمزه خواه کسی که شیراب جهان رومی بازه بینش داره برای خاطر اینکه مزیدن منای آمیخته شدنه بینش داره حالا این ما این رو برای خاطر اینکه که این رو بهتر بفهمیم اینه که این ایده در داستانی که در گرشتا نامه میاد این توصی دیگه بله گرش بله. اسدی گرشتا نامه اسدی این مغوله تحماس تحمور میاد ببینید یک لحظه چیزش کن اون قسمت از شعرو اگه میشه بخونید این رو من بحث می‌کنم در در, در اسادی گزارشنامه اسدی طوسی خیلی داستان‌ها میاد که این تجربیات دینی و فرهنگی ایران در اونجا با شده و این اینها خیلی کمک کننده به روشن کردن مسائلی هستن که در شاهنامه میآید ولی ما دقیقا نمیتونیم اونها را باز و گوشاده بکنیم بله. در اینجا بحث تابوت زیاد میشه و بیه در این گرشاست در این سیر و سیاحتش در, معمولا در این برای خاطر نشاندادن این چیز تجربیاتی که گرشاست کرده برای خاطر پیوند دادن این تجربیات گرشافت این رو به صورت رفتن از جزیره به یک جزیره از یک جای به یک جای درست. به این با این ایده این تجربیات رو به عنوان سیر و سلوک نشون میده به صورت سیر و سلوک یک پهلوان البته پهلوان در ایران معنای این که یک کشتیگیر وزرمن نداشته معنای سابقا فهلوان چون که تن با جان با هم بوده یکه معنای بینشی هم داشته مثل که در شاهنامه می ببینیم رستم همونقدر که پهلوان میدانه همونقدر هم په په په پهلوان معنویاته درسته، شاید بس بنابراین در اینجا هم این شیر و سلوکش در جزیره ها این جزیره ها اینجا حکم همین تجربیات و مختلفی رو که اینها به این عنوان به هم پیوند دادن اومدن در اینجا میره در یک جزیره در اونجا یک خانه از راجور پیدا میکنه و در این خانه یک تابوتی هست در این تابوت تهمورس است ما ب... ب... ب... تاب... تابوت ب... ب... یک رابطه دیگری داریم که اونها راجب جباد... اونها را درباره تابوت تابوت اصاسا تابوته تاب پوته پوت یعنی زهدان تاب یعنی گرما این گرمای زهدان، این آتش زهدان اصل از نو زنده شدنه اصلا کلمه تابوت برای این خاطره یعنی جایی که رتداخیز میشه ما ها از تابوت فوری به فکر مرگ میفتیم اونها ها از تابوت به فکر پرشگرد به فکر بازایی میفتادن اینه که بحث تابوت اینجا خیلی جالبه اون وقتی میگه که در این گرشاف در اونجا یک خانه دیدند از لاجه برآورده از شبشه زر زرد اون وقت یکی تابوت زرین در روی جهان زو چو از مشک به بوی این در این تابوت بوی مشکی ببین همین اعلام بوی مشکی بر میخواست که جهان رو پر میکرد خدا از همین بوی مشک، آخر مشک بوی،, بوی, بوی سی مرغه درسته. درسته از این تابوت بوی مشک بر خواست این خب با ایده اینه که مرگ مرده توش هست فرق داره درسته. درسته. درسته. درسته حالا نبود هیچ کس را به تابوت دست هران کس که شد نزدش افتاد پس وگر زن گوهر وگر زن گوهرها ببردی کسی ندیدی رهر چند جستی بسید از این تابوت اگر کسی میرفت که این تابوت رو دست بزنه و چیزی تصرف کنه اولا همونجا پس می افتاد. یعنی نمیتونست برخیزه سانیان اگر اون گوهری بر می داشت، راه بیرون رفتن رو نمی دونست این درست همون اگر یاد باشه همون داستار چادره رابع بله. که دفعه داستانی گفتیم که عطار بله. که چادراش رو می راه بیرون رو پیدا میکرد بله بله. این درست اون ایدم از اینجا آمده. اینه که یعنی اینها با هم چنون پیون داشتن که اینها از هم قابل جدا کردن نبودن. حالا می خوایم داستان را تمام داستان رو البته نمیخوایم نقل بکنیم، فقط میخوایم در رابطه با اینی که این تهمورس رابطه با بینش و دانش داشت که در خودش سرچشمه بینش و دانشی بود که در, در این داستان شاهنامه گفته شد اونجا به دیوان نسبت داده شد این عملاً از خودش سرچشمه گرفت. چون که این تابوت تابوتش که تهمورسه تابوت حالا در اینجا می که در همین داستان به نزدیک تابوت زرین مگر این تابوت زرین که تحمور سرش هست مگر که دیدی در آن خانه لاجه این خانه راجورد چیه؟ غیر از که این ما اینجا بحث تابوت کردیم لاجه که سنگ راجبردم شب راجبرد اینها میاد این مفهوم خیلی مهمیه این لاج اساساً راج معنای اصلیش از هم گشوده شدن و از هم باز شدنه درست یعنی عملا یعنی زایده شدن ولی این در زبان های مخ... در گویش های مختلف معانی پیدا کرده همه در یک راست دار. مثلا در کردی معنای جوان شدن داره در یک جایی به معنای چیز مذاه و خنده و خوشمزگی داره که شاید همون واجهه لاغم از همین اومده باشه و یک جا به معنای برهن شدن داره معانی که اغلب معنی خنده چیز خوشحالی و باد شدن و در تبری اصلا معنای گشاده گوشاد، شدن و باد شدن داره منتجه است این معانی رو همه رو در این گوی شهر کدوم یک برایندی از این مفاهیم باقی مونده لاج و بردن یعنی شدن لاج یعنی گشوده شدن و باد شدن و زائیده شدن و از زنده شدن و خندان و شادان شدنه جوان شدنه بنابراین میگه بنزدیکه که دیدی در اون خانه راجورد پس این تابوت در کجاست در خانه راجورد خود خانه معناش یعنی سرچشمه این خ سرچشمه است ولی که در خانه مثل در خیابان در خیابان هم معنای خ آبان یا خی آبان یعنی سرچشمه آب ها. حالا حالا در این تابوت چی است که هستن در در این تابوت چی است حلقه و یاره چند زه هبا بمونده است با گیشبن. اینجا هوا در داستان دیگرم میبینیم اسم خورم یعنی زن خدا چون حباب و چیز خررم و بحرام در داستانهای که گرشاست پنامه بیاره جانشین حباب و آدم جانشینه خررم و بحرام میشه حالا این که هستند در حلقه و یاره چند ز حباب بمونده است با گیسپند گیسپند و یاره و حلقه همه حلقه هستن دیست حلقه هست یاره هم یک حلقه دور گردن است و حلقه هم که خود از حلقه خیلی خوب می توانیم بفهمیم که حلقه آلقه بوده به ضرسته یعنی جای آل خب از این برای همین خاطرم میبینیم که این فروهر که در حقامنشیه ها که با بارش دست حلقه دست دشته دلسته. این علامت این چیز خرمه همون جامعه هرا. یکی اینی که حلقه هست. دیگه چی تو این تابوت همون جامعه که ایزد به دست سروش با آدم پرستاد کن را بپوش یکی دیگه اینجا جامعه هست که سروش اون را می آورد سروش جامعه می آورد این جامعه بهمنه بنابراین این و همون لباسی جامعه این صدره یا چیز لباسی را که زردوشتی هم امروز می پوشن این اساساً جامعه بهمنه جامعه که درز نداره و یعنی بینشیس که از هم نمی بوره. جامع جامعه علامت بهمنه وقتی سروش این جامعه رو می آورده درسته؟ مویه، به موی به به گز، گزمه سرم می بهمن دیگه آن اون آه، علامت آهان آه، گزیمه،, گزیمه اون که سر رو درسته, درسته. درسته. ولی یک، اون یک علامت یک, یک علامت از همین جامعه است هم که جامعه این آره همین ای که این علامت دانش و بینشه که, از، که, سرو، که،, که بهمن به وسیله شروش میفرسته خردان حالا دگر ببینید سه, ال... سه تا در این تابوت سه چیزی هست دگر گوهر اندر اندراب به تاریکی اندر چخورشی تاب ش... چیز سوم یک گوهر شب که وقتی نزدیک به آب میشه فوری روشن میشه. روشن میشه که این علامت بینش در تاریکیست اون ال... ج... چیز جامعه علامت بهمنه اون حلقه علامت جفتیه با هم بودن حالا این درست میبینیم هم سروش هم بهمن هم این گوهر شبچراخ که اساس تفکر ایرانی راجع به بینش در تاریکی است که اساس دین بینش در تاریکیه، درسته؟ پس بنابراین میبینیم که در تابوت تابوس تحمورست چی است این ستا هست حالا که از این جایگاه یعنی در از این تابوت این سه چیز اون برد که, یک پیگم، که،, که یکی پیامبر بود با خرد کسی این گوهر رو این سه چیز رو میتواند ببرد که پیامبر خرد است نه پیامبر بلکه پیامبر خرد است یعنی چی یعنی سرچشمه دانش و بینش است حالا ببینید پس بنابراین در این من مقصودم از آوردن این داستان تحمور است این هست که میبینیم در تابوت تهمورست یعنی جایی که تهمورست یعنی این زن خدای عشق و همیشه از نو چی میشه؟ از نوم زنده میشه درست درست در این سرچشمه دانش هست یعنی سر هم اون حلقه هم اون جامعه بهمن که سروش میآورد و هم گوهر چراغ هست که در تاریکی پس بنابراین این دیو که به قول شاها نامه به زور بازین ها رو ها دانش و بینش رو به تحمول شاد میدن همون خود بحمول هست که سرچشمه دانش و بینش هست دلشان. بنابراین بس علیه ما راجع به دیو روشن شد که این این داستان رو با این مسق کردن و تحریف کردن به کلی از اون مفهوم اصلیش دور کردن و درست همین تهمورس همون خودش دیوان بوده یعنی جفت دیو بوده و این در اثر ادیان بعدی که آمدن و اینها با این سرچشمه دانش بودن خررم چون که خررم تحمورس مادر جمشیده پس بنابراین مادر هر انسان ایست یعنی سرچشمه بینش هر انسانی است وقت این برای اونها در دردسر بود ناسازگار با دین و فلسفه و فرهنگ آنها بود خواه ناخواه این علمشانگاه های فکری رو درآوردند و به این وست اینها خیلی مهم که مانده ما از همین کجکوله با یک روش میتوانیم ماش رو کش کنید این آقای جمالی خیلی متشکرم از این مسئله امیدوارم که در آینده یه بحثی هم درباره این که خود تهموره سوار این دیوها میشه و گرد و گرد جهان با این دیوها میچرخه تو یک بحثی هم درباره اون صحبت کنیم این رو مسئله رو دنبال می کنم خیلی متشکرم از اینکه رابطه تهموره با جمشید روشن کردیم و اینکه خود تحمولس دیو بند، خودش جفته با دیوان بوده نه که خودش بی بوده یعنی خدا اصوش دیو بوده نه اینکه بره, یعنی بله. این بره دیوارو بگیره بگه به من دانش یاد بدید خط یاد بدید خودش اینا بود، سرچشمه اینا بوده اها خودش بوده احتیاط به زور ورزی و که دی دیوارو سرچشمه بکنه حال در اینجا دیوها سرچشمه دانش و بینش میشن خب این خودش سرچشمه میبینیم خودش سرچشمه دانش و بینش احتیاج به زور ورز و قهروین ها نداره که به جنگ ب ها. این مسئله اینی که این ایده حتی دانش و بینش هم ضور و قهرم می باد در حالی این تاثیر میذاره ها یعنی شما بعد موقع که مثلا این داستانو رو دربارهتهموررس می خونید آدم فکر میکنید که بعد دانش و خط هم با اوره بہت اول بہت مثلا در دورے دنیای ما باد برے اروپائی‌ها و آمریکائی‌ها رو بزنه تو کلاشون و اسمش چیه بره جهاد باشون بکنه و اون وقت اینها رو مغرور که کرد دانشو بینش اینو از, از پشت در می‌گیره تو جیب خودش بذاره بگه اینا همه از, قد... از من از کتاب مقدس من در اومده خیلی خیلی اون اون مسئله اون ترجمه اون تفسیر اروپا هم خیلی قشنگ بود به نظر من درباره تخم اروپا تهموره تخم اروپا میاد یعنی کسی که از, از مادر میمکه شیر از مادر میمکه این واژه اروپا اینه خب معنیش همینه یعنی همین انسان از مستقیما از خود خدا هر انسانی نمیشه. از خود خدا شیر روشنی رو بله. شیر خرد رو مینوشه مینو اصلا در مثلا مینو مینو خرد میاد که خرد از راه انگشت کوچیک چون که انگشت کوچیک سر پیستون بوده کلیک یعنی از سر پیستون ش... ش... خرد وارد بدن میشه با تمام بدن میام میزه یعنی خرد در سراسر بدن. این اندیشه در اونجا اومده اینا همه به هم پیوند داره اینکه خواه ناخوا این یعنی مستقیما کسی از خود خدا فرهنگ رو میگیره بینش رو میگیره و این خونیست که از شیریست که در بدن هر کسی تبدیل به خونش میشه بلده. و خیلی مهم بود این مسئله که آدم با زور و قهر اینا رو به دست نمیاره بلکه خودش سرچشمه روشنیه بلده. خیلی مچکرم آقای سوفیانی آقای جمالی ببخشید استاد جمالی ما در آینده این بحث دیو رو ادامه میدیم با تشکر از شما